اگرچه ارز هنر پیش یار بی ادبی است زبان خاموش ولیکن دعان پر از عربی پرین هفته رو خود دیو در کرشمه اوست به دید ز ایرت که این چه بولعجبی است در این چمن گل بیخار نچی داری. بی خار کس نچیداری چراغ مصطفی با شرار بولهبی سبب مپرست که چرخ از چه سفل پرور شد که کام بخشی او را بهانه بی سببی است به نیم جو نخرم تاق خانه غاه و رباد مراکه مستبه ایوان و پای خم تنبی است جمال دختر رز نور چشم ماست مگر که در نقاب زجاجی و پرده اینبی است بازار عقل و ادب داشتم من ای خاج کنون که مست خرابم صلاح بی ادبی بیار می که چو حافظ بازارم استزار به گریه سفری و نیاز نیم شبید